بسم الله الرحمن الرحیم برام خداوند بی انداز مهربان نهایت بار رحمت این وحی است جانب خداوند بی انداز مهربان و نهایت بار رحمت کتابی است که در آیات آن هر مطلب جدا و بیان شده است قرآن است عربی برای قومی که می دانن. بشارت دهنده و بیم دهنده هرچند بیشتر شانگو گردان شدن پس ایشان نمی گفتند از چیزی که ما را به آن پرامی خانی دلهای ما در گوش است و در گوش های ما گیرانیست یعنی گوش های ما است و در میان ما و تو حجابیست پس هرچی از سفر می بکن ما نیز هر آنچه از دست ما بیاید کردنی هستیم. بگو واقعا من نیز بشری هستم مثل شما به من وحی می شود به تأکید که خدای شما خدای واحد است. پس توجه خود را به گناه مستقیم با او معطوف دارید از او آمرزش بخواهید و وای بر مشکان. آنانی که زکات نمی دهند و هم ایشانند که از آخرت منکر است. بگو من کسانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند. برای ایشان پاداشیست بیپایاه. بگو آیا این شما هستید که از یکتایی ذات انکار می ورزید که زمین را در روز آفرید و برای او همتایان قائل می‌شوید این است ذاتی که پروردگار جهانیان است. و در زمین کوه های استوار و پاور را بر بالای آن قرار داد و در آن برکت نهاد و مواد غذایی لازمه آن را در چهار روز مقرر گردانید درست به اندازه احتیاج نیازمندان سپس به آفرینش آسمان ها پرداخت در حالی که دودی بود به آسمان و زمین گفت به خوشی خود یا زور بیایید گفتند به خوشی آمدید پس آنها را در دو روز هفت آسمان ساخت و در هر آسمان امور آنها را وحیه کرد و آسمان دنیا را با چرافها زینت و آن را توسط نگهبانان حفاظت کردیم، چنین است تقدیر خدای صاحب قدرت منی و دانا اما اگر روگردانند به ایشان بگو من شما را از عذاب سختی چون سایقه که عاد و سمود را فرا گرفته ترسانی تنگامی که پیانبران از پیش و عقیبشان آمدن یعنی از هر سو و با استفاده از همه وسایل، و ایشان را به این فرا خواندند که جز خدا را پرستش نکنید گفتند اگر پروردگار ما میخواست یقینا فرشتگانی را برای دعوت نازل کرد، لذا ما دعوتی را که شما برای آن فرستاده شده اید نمیپذیرید و ما قوم عاد در زمین به ناحق تکبر ورزیدند و گفتند کیست که از ما نیرومنتر باشد؟ آیا ندانستند خداوندی که ایشان را آفریده از ایشان نیرومنتر است؟ در حالی که ایشان پیوسته از آیات ما امکار می ورزیدند؟ پس بر ایشان باد تند را در روزهای شوم فرستادی تا با ایشان در این دنیا عذاب رس با کنیم را به ویقینا عذاب آخرت از آن هم رسواکنندهتر است و با ایشان از هیچ طرفی یاری نمی شود. و اما سمود ایشان را رهنمایی کردیم ولی نابینایی را بر رهیابی ترجیح دادند پس بس به سبب اعمالی که مرتکب می شدند عذاب آواز مهیب حلاککننده و باری ایشان را فرو و آنهای را که ایمان آوردند و پرهیزگاری کردند نجات دادید و روزی را یاد دارید که دشمنان خدا به سوی آتش جمع کرده شده و سپس ایشان به دسته ها تقسیم می شوند چون به آنجا آمدند گوشها چشمها و پوستهایشان بر ایشان به اعمالی که مرتکب شده اند گواهی می دهد به پوستهای خود میگویند چرا شما بر ما گواهی می می گویند خداوند ما را گویا ساخته که همه چیزها را گویا ساخته است و اوست که شما را برای نخستین بار آفری و به سوی او بازگردانیده می شود. شما اعمال زشت خیش را از ترس اینکه مبادا گوش شما چشمان شما و پوست های شما به شما گواهی بدهند پنهان نمی کردید چون به این گواهی باور نداشتید بلکه شما گمان داشتید که خدا بسیاری از اعمالی را که مرتکب می شدید نمی دانند. این گمان شما که به پروردگار خود داشتید شما را هلاک ساخت و سرانجام از زیانکاران شدید پس اگر صبر کنند آتش جایگاه آنهاست و اگر عفو بخواهند از عفو از شویندگان نیستند و برای ایشان هم نشینانی را گماشتیم که برای ایشان اعمال زشتشان را در گزشته و آینده زیبا جلوه دادند. و فرمان الهی به سلسله پیشینیان جن و انس در مورد ایشان نیز عملی گردید که ایشان زیانکار بودند کافران گفتند به این قرآن گوش ندهید بلکه در اسنای تلاوت آن سخنان بیهوده به زبان آرید یعنی هیاهوی براه اندازید تا باشد که به با جلوگیری از شنیده شدن آن پیروز شد پس به کافران حتماً مزه عذاب شدید را میچشانید بیگمان ایشان را به بدترین عمالشان جزا دهید این از جزای دشمنان خداوند دو زخن. در آن برای ایشان سرای همیشه است به جزای اینکه ایشان از پذیرش آیات ما انکار میکردن کافران میگویند پروردگار از جن و انس آنانی را که ما را گمراه کردند برای ما بین تا ایشان را زیر پای خود کنیم و از پسترین مردم شوند. بیگمان آنانی که گفتند پروردگار ما خداست و باز استقامت کردند فرشتگان برایشان نازل می شوند و می گویند نترسید و غمگین مباشید و به بهشت مجدیابی که با شما وعده شده بود ما در زندگی دنیا و در آخرت یار و مددگار شما برای شما در آن هر چی خواسته باشید مهیا است و در آن برای شما هر چی بخواهید آماده است مهمانی از خدای بخشاینده مهربان و کیست بهتر از روی سخن گفتن از کسی که مردم را به سوی خدا فرا خاند؟ و عمل صالح انجام می دهد و می گوید من واقعا از جمله مسلمانانم نیکی برابر نیست و بدی نیز برابر نیست یعنی هر کدام از آنها درجات متفاوتی دارند بدی را به بهترین نیکی دفع کن پس آنکه در میان تو و او دشمنیست همانند دوست غمهار تو میگند، به این مقام نمی رسند جز کسانی که شکی با یور و نمی رسند جز کسانی که از خلق نیکو بهره وافر دارد و اگر از شیطان به تو وسوسه ای پیدا شود پس به خدا پناه آر بیگمان او شنو و دانه از نشانه های او شب و روز آفتاب و ماه هست. نه به آفتاب سجده کنید و نه هم به ماه بلکه به خدایی سجده کنید که آنها را آفریده است اگر خواست او را می ولی اگر تکبر ورزند همین کافی است که آنانی که نزد پروردگار تو اند در شب و روز او را تسبیح می گویند و ایشان خسته نمی شوند و از نشانه های او این است زمین را خشک و فرود افتاده می بینی چون بر آن آب را فرود آوریم و احتزاز می آید و نمو می کند یعنی می پندد بگمان ذاتی که آن را زنده یعنی شاداب و سه سبز می سازد واقعا مردگان نیز می باشد و بیگمان او به هر چیز تواناست آنانی که در برابر آیات ما کجرفتاری می کنند یعنی از پذیرش اسلام سرباز می زنند بر ما پوشیدن نمی مانن. آیا کسی که در دوزخ انداخته می شود بهتر است؟ یا کسی که در روز قیامت با امن و آرامش به سوی ما می آید؟ هرچی می خواهید بکنید، بگمان او به چی می کنید بیناست. آنانی که به این ذکر یعنی قرآن وقتی که به ایشان آمد، کافر شدند، یعنی از ایمان آوردن و آن سر باز زدند به جزای بس شدید گرفتار می شوند. و بیگمان این کتابیست نهایت پیروزمند هیچ باطلی به با آن از هیچ پهلوی راه ندارد نه در آینده از پیشروی آن و نه هم در گذشته از عقب آن وهیست از جانب ذات صاحب حکمت و ستوده به تو از جانب دشمنان گفتن نمی شود مگر همان چیزی که به پیامبران پیش از تو گفته شده بود بیگمان پروردگار تو برای آنهایی که از این روش نادرست باز میگردند صاحب آمرزش بزرگ و بر آنهایی که به این روش خود ادامه دهند صاحب مجازاتی دردناک است اگر آن را قرآن عجمی یعنی به زبان جز زبان عربی می ساختیم حتما می چرا آیات آن روشن ساخته نشده است؟ آیا کتاب عجمی برای مردم عربی؟ بگو این برای مؤمنان هدایت است و شفاید ولی نامسلمانان به گوششان کنبه کریست و این نور تابان برای ایشان مایه است گوی ایشان از جای دور فرا می شود بیگمان به موسی کتاب را دادید پس در مورد آن اختلاف به عمل آمد و اگر حکمی از جانب پروردگار تو مبنی بر اینکه محاسبه در آخرت است صورت نمی گرفت همین اکنون بینشان فیصله به عمل می آمد. و واقعا ایشان در آن یعنی در مورد قرآن در شک تهمت اندودند کسی که کار نیکی انجام دهد برای خود اوست و کسی که بدی کند پس بر خود اوست و پروردگار تو بر بندگان هرگز ستمگر نیست علم قیامت به سوی او باز می گرد. هیچ یک از میوه ها از غلاف شگوفه خیش بیرون نمی آید و هیچ ماده چی انسان و چه حیوان باردار نمیشود و نه هم بار کمی خیش را به زمین می گذارد مگر به اساس علم او و روزی که خداوند به ایشان خطاب کرده بگوید کجایان شریفان من؟ می گویند با تو گفته بودیم که هیچ یک از ما هرگز گواهی حقانیتی چیزهایی که آن را به تو شبیک می آوردیم نیستیم چیزهایی که از پیش نیایش می کردند از نزد ایشان گم می شود و در می که برای شان پناگاهی نیست انسان از دعای خیر ماندن نمی شود و چون به او زیانی برسد به با یک بارگی خود را می بازد و ناامید و دل شکسته می شود ولی چون با او مرحمتی از جانب خیش بچشانیم. بعد از آن که سختی و مشکلاتی دیده باشد میگوید این از روی استحقاق من است و گمان نمی کنم که قیامت برپا پاشو و اگر سوی فروردگار خود بازگردانی شوم هم به یقین برای من نزد او و نیکوست چنان نیست که کافران می بندارن. بلکه در این حال کافران را به اعمالی که متکب می شوند آگاه می گردانید بگمان به ایشان عذابی خشونت، اندودی را می چشوند و چون به انسان نعمتی ارزانی کنیم از حق رو می گرداند و پهلو توهی می کند ولی چون به گیب او می رسد و دعای دور و درازی می پردازد بگو بیبینی اگر این از جانب خدا باشد که هست و باز از آن انکار ورزید پس کیست گمراه تر از کسی که با حق در مخالفت شدیدی بسر می برد؟ زودی با ایشان نشانه خود را در آفاق یعنی اطراف و اکناف جهان هستی و نیز در وجود و حستی خودشان نشان می تا برای ایشان روشن شود که این پیام حق است آیا این خود برای پروردگار تو بسنده نیست که او بر هر چیز گواه است؟ آگاه باش. واقعا ایشان از دیدار پروردگار خود در شکل آگاه باشید بیگمان خدا و هر چیز احاطه دارد